بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه صلى الله على محمد وآله الطاهرين لاسيما مولانا وصاحبنا بقية الله في الأراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة ملیم و خافظم و قائدم و حتى و دلیلم و وتمتعه فيها تسکنه السلام علیکم یا مولاتنا یا فاطمه الزهراء السلام عليكم يا اهل بیت النبوه بحمد الله در بررسی آیات بودیم که به اون آیات در وحدت شخصی وجود استناد شده بود آیه بعدی که به اون استناد کردن برای اثبات وحدت شخصی وجود این ذکه از آیات مبارکه است که در بعضی از آیات قرآن آمده یا علمو من خلق و هو اللطیف و الخبیر که خداوند متعال به خلق خودش آگاهی داره و اون لطیف و خبیر هست به این کلامی شریف استناد شده به اینکه بعضی گفتند که خداوند متعال که لطیف است یعنی خداوند متعال همانند شیء لطیف در همه چیز سریان دارد خداوند متعال در همه چیز نفوذ دارد و اینی که خداوند متعال ساری است در همه چیز و در همه چیز نفوذ دارد خب به این نحوه میشود معنا کرد که وجود همه چیز همون وجود خداست که این همون مفاد وحدت شخصی وجود خواهد بود بعد بعضی استناد هم کردن به کلامی از مرحوم محمد حسین تبایی طبع در علمیزان زیل آیه چهارده سوره ملک که علی یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر که ایشون گفتند که اننافذ و فی و الاشیاء یعنی خداوندی که نافذ است در باطنهای اشیاء المتلع علا جزئیات وجودها و آثارها و متلع هست بر جزئیات وجود اشیاء و آثار اون اشیاء که اینها هم به این تمسک کردند که ایشون هم یعنی لطیف رو به معنای اننافذ فی و باطن الاشیاء گرفته و اینی که خداوند مطال نفوذ دارد در همه چیز سرایان دارد در همه چیز یعنی وجود اونها وجود خداست پس این یعنی وحدت شخصی وجود و بعضی از معاصرین هم حتی در کلمات خودشون روی این آیه شریفه بسیار تکیه کردند و یکی از استدلالات اساسی خودشون حتی این کلمه مبارکه اللطیف رو آوردند در نقد اولی که ما میخواییم بگیم اینه که اولا این معنا خب باز هیچ ربطی به این آیه شریفه ندارد و اینی که خداوند متعال لطیف هست و خداوند متعال به مخلوقات خودش هاگاه هست ربطی به این ندارد که خودش درون اشیاء ساری و جاری هست اینی که خداوند متعال این لطافت رو دارد چه ربطی دارد به نفوذ در اشیاء به ساری شدن در اشیاء که البته این سریان در اشیاء و این نفوظ در اشیاء هم باز ربطی به وحدت وجود نداره و بلکه این با حلول تازه سازگار تر است که همه اشیاء هستند و خداوند متعال در این اشیا نفوذ دارد در این اشیا ساری هست رضا حتی اگر این معنا رو هم ما اخص بکنیم خب این باز ربطی به وحدت وجود ندارد و یعنی خداوند متعال ساریست در اشیا خب با حلول این سازگار تر است رضا طبعا خود شما دست به تعویل زدید و چون وحدت وجود رو قبول دارید از این ظاهری که حتی خودتون اینگونه معنا می کنید دست برداشتید و قائل به وحدت وجود شده اید علاقه بر این خود معنای لطیف ربطی به نفوز در اشیاء ربطی به سرایان در اشیاء نداره رضا در آیه شماره صد سوره مبارک یوسف آمده ربی لطیفن لما یشاء خداوند مطال با آن چیزی که بخواهد لطیف است انه حوال علیم الحکیم به درستی که اون علیم و حکیم است. و در آیه 19 سوره شورا آمده الله لطیفن به عباده یرزق من یشاء خداوند مطال به بندگانش لطیف است هر کس را که بخواهد روزی میدهد خب در این آیات شریفهی ای که ارز کردم لطیف به بعضی از مخلوقات خداوند متعال خوب نسبت داده شده بعد از طبعا سبوت وجود اونها یعنی این عبادی که هستند خداوند متعال به اونها لطیف است یا کسانی که خدا بخواهد خداوند متعال نسبت به اونها لطیف است لذا خود لطیف بودن اصلا ربطی به نفوز در اشیان ربطی به سریان به حسب خود معنای خودش ندارد و این کلامی هم که از مرحوم تبا نقل شده خب این به این نهوش روایت نیست و فقط کلامی از ایشون هست که تازه این هم به نظر با توجه به عبارت بعدی که ایشون گفته که المتله و جزئیات وجودها ها که داره دوباره بیان می کنند نافذ و فی بواطن الاشیاء المتلع طبعا ایشون داره نفوذ علمی رو بیان می کند نه اینکه خود خدا وجودش درون اون اشیاء هست نقد بعدی رو که باید انشاءالله بیان بکنیم در این مورد اینه که خب در خود روایات عیمیت اطهار علیهم السلام معنای لطیف بیان شده قابل ذکر است که در اینجا لغویین هم که گاهی اوقات در کتب لغت این معنای لطیف رو بیان کردند عمدتا از همین گونه معانی که عرض شد که متأثر از گاهی اوقات مباحث عرفانی و چیزهای دیگری هست اینها رو اخذ کردند که خود اینها مصادره به مطلوب هست در روایات ائمه معصومین علیهم السلام که اینها مفسران حقیقی قرآن هستند معنای لطیف در روایات مختلفی بیان شده که حالا ما به چند روایت اشاره می کنیم این روایت شریف رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که علی ابن ابراهیم عن المختار ابن محمد ابن مختار محمد ابن المختار الحمدانی و محمد ابن الحسن هر دو نفر علی ابن ابراهیم از این دو نفر نقل میکنه که محمد بن حسن عبدالله ابن الحسن که عبدالله ابن الحسن العلوی جمیعا با ذوالبرای اینها از ان الفتح ابن الفتح بن یزید الجرجانی عن اب الحسن علیه السلام نقل میکنه که بنابر بعضی از مبانی رجالی صحیحه از جمله بحث رجالی که خود این حقیر ما این رو اختیار کردیم و پذیرفتیم خب این روایات سندش سند است و قابل اعتناع هست که کراران از کردیم که خیلی فرصت نیست و جای این نیست که ما وارد بحث رجالی در این زمینه بشیم اما خب این سند سند خوب و مورد اعتناه است. قال سمعته یقول شنیدم که آقا اب حسن علیه السلام میفرمودند و اللطیف الخبیر السمیع البصير الواحد الاحد الثمد خداوند متعال لطیف و خبیر و سمیع بسیرو واحدو احدو ثمد هست وصفات دیگری رو بیان میفرمایند حدیث طولانی است، تا اینکه به اینجا میرسد که خود فتح بن یزید الجرجانی میگه که فقولک اللطیف الخبير فسره لی کما فسرت الواحد آجان این کلمه لطیف و خبیر رو هم برای ما تفسیر بفرمایید همینطور که شما واحد رو تفسیر کردید فا اینی اعلم و ان لطفه خلاف لطف خلقهی للفصل من میدانم که لطف خداوند متعال لطیف بودن خداوند متعال فرق می کند با لطیف بودن خلق خداوند متعال به خاطر جدایی خدا از خلقش و فرق داشتن خداوند متعال و غیر غیر انی احب ان تشرح ذلک لی اما خب من میخوام شما این رو بر من شرح بدهید که معناش چیست فقال یا فتح انما قلنا اللطیف للخلق اللطیف یعنی که ما میگوییم خداوند متعال لطیف است به خاطر خلق کردن چیزهای لطیف است لعلمهی ه به شیء اللطیف به علم خاطر علم خداوند متعال به چیز لطیف است اولا ترا وفقه کالله و ثبتک آیا نمیبینی خدا تو رو معفق بدارد و ثابت بگرداند الى اثر سنهیف نبات اللطیف به اثر خلق خداوند مطال در گیاه اللطیف و غیر اللطیف و غیر اللطیف و من الخلق اللطیف و من الحیوان استغار و از خلق لطیف و حیوان کوچک و من البعوز و از پشه و ماهو و اصغر و منها تر از پش مالای کاد و تسکبین و هل اویون، چیزهایی که حتی چشمها اون رو نمی بیند بلای کاد و یستبان و از ذکر من الانسا بعضی منقدر من هستند هستن که اصلا نرماده این ها قابل تشخیص نیست و الحدث و المولود و من القدیم اون بچه‌ی اینها از اون میان سال و کسی که سن زیادی داره از این حیوانات مشخص نیست انقدر اینها ریز هستن فلن ما رأینا عینا سقرزال کی فزال لطفه وقتی که کوچکی اینها رو دیدیم و احتداءه و لاستفاد و در عین حال می‌بینیم که اینها همه برنامه‌ریزی شده هدایت اینها به اون جفتگیری با خودشون و الحرب من الموت اینها از مرگ فرار میکنند و الجمع ها اون چیزهایی که مسلحت خودشون هست اینها رو جمع میکنند خب با اینکه ریز هستند اما در برنامه ریزی در دقت در تدبیر در اوج خودشون هستند خب و ما فی به ها در اون اعماق دریا و مافیده ها الاشجارها الاشجار اون چیزهایی که در پوستهان درختان و المفاوذ و الصغار در کویرها و بیابانها و افهام بعضها ان بعض منطقه ها که اینها تازه کلام خودشون رو به دیگری منتقل می کنند و مایف همو به اولادها آنها فرزندان اینها میفهمند که اینها چه می چه میخواهند و نقل غذا علیه غذا رو به سمت این فرزندانشون به سمت خودشون نقد میکنن ثم تألیف علوانها حمرت مع تن و مع المعهمتن این رنگهای عجیبی که سرخی با بزردی سفیدی با سرخی اینها مخلوط شده و انه لا تکادو قیون نناتستبین هو خلقها لا تراه حیون ناولات تلمسه هو ایدینا انقدر اینها ریز هستند که ما توان تشخیص اینها رو نداریم چشمان ما نمی تواند اینها رو تشخیص بکند تشخیص بدهد نمی تواند اونها رو ببیند دستان ما قدرت لمس اونها رو ندارد علم از همه اینها فهمیدیم که ان خالق آخوات الخلق لطیفن خالق این خلق لطیف است لطف به خلق ما سمینا لطیف است به خاطر خلق این گونه چیزهایی رو که ما نامیدیم بلا بلا ولا عادتن ولا اداتن ولا الاتن بدون رنج و ابزار و وسیله و ان کل صانعه شیئا فمن شیئن سناء هر آفریننده هر کسی که چیزی را می از یک چیزی می یک ماده دارد که می آفریند. و الله الجلیل خداوند متعال که خالق و الجلیل هست، خلق و سنا آلمنشای خداوند متعال خلق کرده از لا, لا منشی از چیزی خداوند متعال خلق نکرده این نبوده که چیزی باشد و بعد از اون ماده خداوند متعال خلق بکند و سن خب این در اصول کافی باب بعدی معانی اسما و اشتقاقها که عنوان این باب هست باب آخر و هو من الباب الاول حدیث شماره یک این حدیث شریف آمده در کتاب توحید و عیون اخبار الرضا علیه السلام هم مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه روایتی رو الدقاق عن الكلینی عن علان عن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن خالد که همه اینها ثقه هستند عن الحسن الرضا علیه السلام از آقا امام رزا علیه السلام که در کافی هم همون آدرسی که دادیم حدیث شماره دو این آمده فقط در صند فرق میکند و اما لطیف، اینی که خداوند متعال لطیف است، این هم روایت مفصل تا به این عبارت میرسد حضرت و اما لطیف، فلیس علاقلت و قضافت و سغر، خداوند متعال لطیف است، به خاطر کمی و نازکی و کوچکی نیست ولیکن ذالکه على نفاز فی الاشیاء و من ان این یدرک، این به خاطر نفاز، نفاز خداوند متعال، در اشیاء هست باریکبینی نفوذ خداوند متعال در اشیاء هست و امتناع از اینکه خداوند متعال درک شود بعد این عبارت رو که نفاز فی الاشیاء و من ان یودرک رو حضرت توضیح میدن که قول که مثل این قول تو که عنی هاز الامر انقدر این مسئله دقیق هست که از من این پوشیده ماند و لطف فلانون فی مذهبهی و قوله گاهی اوقات این رو نسبت به دیگری میدهیم میگوییم که فلافلانی در مروش خودش و در گفتارش لطیف است بسیار دقیق پوشیده حرکت میکند یخبرو که که این عبارات داره این رو میگوید که انهو غمزه فبهر الاغل یا در عبارت کافی داره قمز فیه العقل که این فرد طوری حرکت می کند که یا اون مسئله چنان بر من لطیف ماند که عقل در آن در مانده شده در آن مانده و فات طلب و طلب هم از دست رفته و آدم متعمقا متلطف توری طوری این تعمق پیدا کرده متعمق و متلطف شده که لا یدرک و الوهم که دیگه وهم اون رو درک نمی کند کذا بعد حضرت از این عبارات خودشون نتیجه کلی رو میگیرند. گیرند کذا لطف الله تبارک و تعالی این است لطف خداوند متعال تبارک و تعالی ان این یدرک به حدن از این که خداوند متعال از این لطیف است که درک شود با حدی او یو حد به وصفن یا حد پیدا بکند خداوند متعال با وصفی اینجاست و لطافت, اما خب لطافت از ما از صغر و القلة هست لطافت از در ما مخلوقات اون کوچکی و قلت هست فقط جمعنا الاسم وقتل وقتلف المعنا خب ما در این اسم با خداوند متعال شریک هستیم اما معنا مختلف هست خب احادیث دیگری در باب لطیف بیان شده من این حدیث رو چون درش بحث نفاظ آمده این رو من متعمدانه آوردم این رو که یک وقت هم نسبت به این حدیث شبهی نشه در اینجا با اینکه در این حدیث شریف ارن نفاظ فل اشیا آمده اما خب اولا با عبارات بعدی کاملا این معنا پیدا کرده و الامتنان من یدرک بعد حضرت که قول که کاملا توضیح میدهند که این نفوز منظور یا این نفوذ پیدا کردن خداوند متعال در اشیاء در این است که خداوند متعال چنان افعال خداوند متعال اینها و قدرت خداوند متعال چنان اینها باریک از چنان دقیق است که چه بسا ما این اثر سن رو نبینیم نه تنها که اثر صنو رو نبینیم نه توانیم درک بکنیم انقدر در جزئیات امور خداوند متعال وارد شده است و اینها رو به جزئیات تمام درک کرده و صونن در جنبندی نهایی هم که دوباره حضرت بیان می‌فرمایند فها کزال الله تبارک و تعالا عن ان یدرک به او یحد به وصف یعنی خداوند متعال انقدر لطیف است که نمی شود اون رو درک کرد با حدی یا حد زد خداوند متعال تعریف کرد خداوند متعال رو با وصفی یعنی لطافت خداوند متعال در حدیث گذشته بود که در اثر سن لطیف است و در این حدیث شریف هم اشاره به این هست که انقدر خداوند متعال در عین ظهور خودش در عین اینکه همه عالم خلق خداوند متعال هست ما نمی توانیم خداوند متعال رو درک بکنیم. لذا خب اولا خود معنای نفاظ در این حدیث شریف کاملا بیان شده ثانیان خود کلمی نفاظ فیل اشیاء که اگر اینطور هم معنا بکنیم که نفوظ کردن خداوند متعال در اشیاء خود این معنا به حسب لفظ خودش ساکت است از اینکه که خب نفوز با چیست نفوذ چگونه هست آیا نفوظ با علم و قدرت هست یا مثلا نفوز با وجود خداوند متعال در اون شعی هست که خود خداوند متعال در اون شی نفوذ پیدا کرده و این نفوز با علم و قدرت هم فراوان استعمال شده لغویین ذکر کردن لذا خب از این جهت که نفوذ چگونه هست فقط آمده خداوند متعال نفوظ پیدا کرده اما نفوز چگونه هست خب این روایت ساکت است لذا خب با تبیین روایات کاملا معلومه که نفوذ با علم و قدرت است. روایت دیگری رو هم عرض بکنیم در این که نفوذ با علم و قدرت آمده در تعابیر روایات آمده با اراده آمده. علی ابن ابراهیمن ابی هن العباس بن امر الفقیمی ان هشام بن الحكم ان ابی عبدالله علیه السلام که سند خوبیست انهو قال للزندیق هین سأله ما هو که هزت در سؤال زندیق که سؤال کد خداوند مطالچیز فرمودن قال ابو عبدالله علیه السلام هو اجل من ایعانی الاشياء به مباشرتن و معالجتن اجل از این است که خودش اشياء رو معاینه بکنه خودش مباشرت بکنه در اشیاء خودش متحد شود با اشیاء معاینه بکند با اشیاء خودش مستقیما مثلا اشیاء رو بگیرد لان که صفت المخلوق تون این صفت مخلوق است الی لا تجیء الاشیاء له الا بالمباشره و المعارجه و هو متعال خداوند متعال متعالی است از اینکه اینطور معنا بکنیم نافذ الاراده و المشیعه فعار النموایشاء خداوند متعال نافذ الاراده است نافذ المشیه است اذا خود خب نتیجه بحث این شد که حالا این آین هم در اصول کافیست در باب اطلاق القول به شیء حدیث شماره 6 نتیجه بحث این شد که این معنا هم این آیه هم نه تنها ترفتی به وحدت وجود ندارد با توجه به اینکه متعلق لطف خداوند متعال رو اشیاء دیگر بیان کرده رد وحدت وجود و وحدت شخصی هم خواهد بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکات